ایران بازنگری در تاریخ قلمرو میانی به نام خدا با عرض سلام و ادب احترام خدمت هم میهنانی گرامی همراهان ارجمند در قسمت سیوم برنامه ایرانویج در خدمت شما هستیم بازخانی تاریخ قلمرو میانی و به خصوص تاریخ ایران و ایرانویج در قسمت گذشته ما بیشتر وقت رو در اختیار جناب آقای فیروزی عزیز قرار دادیم تا اینکه این, که این فرضی خودشون رو در مورد واقعی بودن این اسلامی و تاریخی بودن و زمینی بودن حاکمیت پیشدادیان کیانیان در خدمتشون باشیم در این قسمت هم از ایشون شروع می کنیم ایشون به دوره جمشید شاه رسیدن در قسمت گذشته حالا جناب آقای فیروزی در شاهنامه و کلم متون گذشته متون کهن در مورد این که جمشید شاه به چه استبدادی روی میاره که فردی مثل زهاک میاد حاکم ایران میشه حاکم این منطقه ان ایران که اون موقع هنوز به این شکل ایران نمیگفتند و به اضافه اینکه در دوره زهاک ما چینو استبدادی رو داریم چون شما تو کش... توی کتابتون یک چیز شبیه زندگی اشتراکی یا مثلا اینها رو مطرح می‌کنید شبیه همین مباحث کمونیستی که اتفاقا در برخی از این مورخین دوره شوروی هم یه تا نفرشون اومدن ایران و حدود چهل سال پیش کتابی هم در این مورد نوشت در تاریخ ایران و کلا نگاه و نوع متدولوژیشون متدولوژی چپ بود و کمونیستی بود اذا میفرمایید شما رو میشنویم چون شما تو قسمت گزارش وارد دوری زهاک شده بودین و این فلسفه قیامی که تو اسطوره‌ها قیام فریدون و کاوه آهنگر آیا شما فریدون و کاوی آهنگر رو هم حالا فریدونی که قطعا میدونه کاوی آهنگر رو هم یک شخص تاریخی میدونید و به چه دلیلی منابع خودتون رو هم بفرمایید با درود ما شما و شنوندگان ببینید در تاریخ ما فلسفه تکرار شدن و رخداد تکرار شدن رو بارها دیدیم بله یعنی شما بیاید جلو تا دوران خامنشیان و دوران قباط دو تا اتفاق جالب و تکراری شده در شوروی هم دقیقاً همین اتفاق تکرار شده و من اینو در دوران زهاک نسبت به جمشید و فریدون نسبت به زهاک هم می‌بینم کل قضیه چیست یک حاکمی این از نظر شوکت به حد اعلی رسیده فکر می‌کنه دیگه محبوبه است جمشید هم اینجوری شد دقیقاً داشت و کمبوژا این اسمو داشت این کمبوجی رو رفت م... کاریو کرد که آشوریا ناتوان بودن مصر رو گرفت و مون در اونجا و حاکمیت ساسانی هم با مشکلاتی که داشت ولی از نبرد با روم پیروز اومده بود بیرون آخیش نبردشون که مثلا ها. به دوران بهرام گور بود اینا هیچین ادس ندادن بلی چه اتفاقی میفته دقیقا اتفاقات مشابه یوه ما با حاکمیت بعدی رو رو میشیم که حاکمیتای هستن با ویژگی که مالها بعد اشتراکی بشن مردم باید جابجا جا بشن نیروی کار باید جابجا جا. بافت جمعیتی باید به هم بریزه ما این درکتی 20% نسبت به گومات می‌بینیم ما اینو نسبت به مزدک می‌بینیم و ما این رو نسبت به کم گزارش کرد. و در پس اینا چیه یک حکومیت سیاهی که مردم رو عصبانی کرده حکومیت بعدی ازش برای بدگویی می‌کنه و مردم از حکومیت بعدی راضی‌ترن وضعیت قضاوتشون بهتر شده و یک جایان جایی به وجود میاد نفر بعدی فریدونه نفر بعدی داریوشه نفر بعدی انوشیروانه این انقلاب هایی که اینا اصلا ایجاد میکنن در اقتصاد مملکت در شوکت قدرت مملکت در پایداری مملکت سه اتفاق مشابهه یعنی باز من در اینجا در مورد جمشید و زهاک یه اتفاق تاریخی دارم میبینم نه اتفاق اسوری حالا این اشتراکی بودن مالکیت رو از در زمان زهاک شما دقیقا از کدوم منبع تاریخی آوردید ببینید این منابع راجع این موضوع متأخرن یعنی دقیقاً این مناوبر من بخوام خدمتتون دقیق نام ببرم این اینو ها بیرونی میگه صفحه اصل الباقی و... دقیقاً در صفحه 173 میگه که اشتراکی بود اون موقع دقیقاً. و دلیل قیام مردمم به خاطر این اشتراکی نه دلیل قیامو نمیگه این اینو نوشته و قطع ما قطعاً می... ما از نتایج دیگر شواهد دیگه میتونیم به نتیجه برسیم که یکیش این بوده حداقل شما مردم به خاطر میگه راضی نبودن از ظلم هر چیش بوی راضی نبودن ببینید حالا باید بیم بی باستان شناسی ما اینو مثلا تطبیق بمییم که آیا به دوره‌ای در نوسنگی ما سیستم اشتراکی شده ما اینو در شمال غرب ایران داریم که در یک دوره فرهنگ نوسنگی منطقه رو آورده به اشتراک انبارهای مشترک دارن خونه ها حیات مشترک دارن یعنی دارن بهره کشی مشترک انجام میدن حالا این یا باسلیقه چیز ما نمی که با شون یک قدرت اینا رو وادار کرده این حرکات باستانشناسی باید بیاد پیاده بشه تا ببینه که این صحبت درست است یا نه بعد ما ردش کنیم برای حاکیمندیسی گوزداش اشتراکی دارن و این تکرار تاریخ ما در اینها بینیم و شاهده بدیشون هست اتفاقی که در پایان حاکیمند زخاک میفته بیوراست پسر مرداست ببینید حتی پیس مشخصه این مثلا فلانی خدا پسر فلان خدا یا فلان چیز نیست. آخه خیلی حالا اینو اینجا داشته باشیم خیلی برای من عجیب هستش. ما سلسله‌های متأخره که داریم مثلا سلسله خامرشان پدر به پسر میرسه مثلا فامیل هستن از یک خاندان هستن. این سلسله پیشدادیانی که شما تو کتابتونم اینو مطرح کردید مثلا کیومرث هوشنگ این از نیستات فامیلیان چنانی هم با هم ندارن. خیلی نکته جالبه تو یک کتاب نوشتم. درست. ریشه دموکراسی و ملی سایران باستان. و این نوشتم چرا؟ ببینید اولین نفر انتخاب شده کیومرسه دو ومی نفر قرار بود پسری آقا بشه. اتفع دیاکو دیاکافتداد بله. قرار بود سیامک بشه پسرش کشته شد نفر بعدی هوشنگ شد که برقی منابع میگن نوش بوده برقی منابع میگن فامیل دورش بوده نفر سوم دوباره دوباره تمرس که پدر ویونکان بله. ویونکانش که میره از گیاه هم ثرهه میگیره حرکت پزشکی کرده این و یک آدمی که کارای پزشکی میکنه عسمتطره حالا منی نامش هرچی میخواد باشه هم خور باشه چیزی باشه اسم یه آدم اینه و این آدم باز ربطی به هوشنگ نداره یعنی نشون میده ما میتونیم به شاهر نفر اول در نظر بگیریم که این آدم انتخاب شده دوباره آیه تحمورس بله احتمال توسط بواسطه یه انجمن یک حالا انجمنش هم میرسیم بزنی بزنی؟ کجاست جمع برادر این آقاست. است خود شده استدوی شده دارشش این تپیس زمان بی وراث اتفاق این آدم کودتا میکنه بعضی میگن قاهرزاده کودتا کرده ما کاری نداری زمان زهاک چه اتفاقی میفته وقتی که قیام صورت میگیره این آقا سریع انجمن صدا کرده بیایم به منش استشهاد بدین که من آدم عادلی بودم من کار بد نکردم یعنی یک مجلسی در کناریم انجمن در کنار این آقا هست حتی این همین ادم این آدم, کودتاق آدم. کودتاق یعنی حاکم... مستبد اینشون میگه حاکمیتای پیشینش هم ولی داشته باشن که جمشیدونو زده کنار قولشم قدرت مطلق است ولی باز این حرکت طبیعی است ما این باهان در تاریخیان ایران باسا میبینیم در نوشته‌های اشو زرتوشم اینو میبینیم که اشاره به یک قاستار بازگشت یک انجمنی به اسم مگس اینو بارها به گشتاس و پیروانش در میگه اون مگه باید باز گردد که گشتاس زیاد از این قضیه زاهر خوشش نمیاد ما نمیدونیم و به هر حال نشون میده دوران زهاکی بوده ردش در گاتا هستش و در آینده ایران و خب ولی خب جواب نمیده دیگه این قیام صورت گرفته کاوهی به حال جیزه صحبتتون اونجامون که در واقع آثاری از همین زندگی اشتراکی در شمال غرب ایران هم دیده, دیده میشه دیده میشه بل. ما بعد ببینیم که در حوزه فرهنگی که به این زهاگنام شدم دیده میشه یا نه باستانشناسی ناقص فعلی ایران با نوسنگی فلات مرکزی خوب کار کرده ولیش خراسان اصلا خوب کار نکرد آسیه فرارود رو اصلا افغانستان که تعطیله اصلا با ایمان من تو منجی ما که اون قسمت شده پس امید داریم چون اونم هست امید هست. این مدل زندگی وجود داشته یا تحمیلی یا دل بخواین در صورتی که اون زمان انسان نوسنگی کاملا جوامع منفعت طلبی بودن یعنی چی یعنی اینها خونه هایی ما داریم که انبار شخصی داشتن حتی میایم جلوی تر محرومم میشدن جنا یعنی لو من اشاره خواهم کرد یعنی حاکمیت حاکمیت اشتراکی نیست حاکمیت مالکیتیه مالکیت فرد انقلاب که صورت میگیره ببینید میگن آقا از اصفهان کاوه از اصفهان قیام کرد. کاوه آهنگر. دقیقاً ما میدونیم که به دوران تهمور تهمور ز اصفهان بوده و سارویه ساخته و, و کتیبهش هم دیده شده. پس اصفهان طبیعی است که مرکز یک جنبش باشه. برای این. و خیلی هم جالب این کاوه آهنگر میشه که شکن آهنگر مگر اون دوره هنوز عصر فلزات بوده که دقیقاً آهنگر این یک مشکل ما الان همین هست که آیا این آهنی که به نسبت دادن این آهن به معنی آهنه؟ به یعنی همین آهن امروزی که ما میگیم هست؟ چون بعضی میگن اینا همه معنی مذه. من زبانشناس نیستم نمیدونم. و اگه هم باشه باز حل میکنه کنه قضیه, قضیه حل... نو سنگیه اصلا فلزا شروع نشده بلد دقیقاً فلزات اصلا استخراج هم نشدن پیدا می شدن پیدای طبیعت بودن یعنی مثلا سنگی می تراشیدن و یه خورده چیزی هم بوده میدونید اینو این باستان شناسی حلش کنه یعنی این الحاقات پیوستای متأخره ممکنه که هاوه سنگ تراش بوده ما نمیدونیم بوده قضیه یعنی فردوسی هم یعنی مثلا فردوسی هم به اصر فلزاد آشنایی نداشت که مثلا فردو گفت که آهانگر بزیه همین, همین هستشی وقتی داره از اصر کوهن صحبت میکنه چرا بد داریم؟ اگر این دوران هستن بشه را آهان بوده اون دوران میدونید؟ این... همون داستان تاریخی است که اتفاقات متأخر پیوست داده میشن به متقدم. بله. خب آقای کریمی چیز زبانشناس نوبتیشون میشه میپرسیم ازشون. من ادامه بدم؟ بله ادامه بدیم ببینید قیامی که از چی صورت میگیره در حوزه حاکمیت زهاک و ام قضی انجمن اینا قضیه‌ایه که ما شوایش در این باستان پیدا میکنیم که گاتا میاد جلوتر حاکمیت برانداخته میشه. اما اینقدر حاکمیت سیاه بوده که درازاشو کردن یک هزاره و خیلی جدید وقتی ما شاهنامه تحلیل میکنیم ببین در هیچ متن ما اینو طبیعی نداریم زحاک تنکیز از پیشدادیان و کیانیان که یه دونه سند سال طبیعی هم بشن داریم حالد سومریه حتی در یشتا هم همه اون شاهان و پهلوانان انسانن هم سه تا پوزه داره شش تا چشتیه حتی جمشیدم هفت سال بلاخره استورهیه دیگه ولی هفته سال دو س یعنی سندی وجود داره که طبیعیش هم مونده باشد دست عر... شیری بابکان در رفته باشین قضیه. ولی زهاک انقدر منفور هست که عرب میشه تازی میشه بابلی میشه هزار حکومت سیاهش میشه و در اوستا یه هیولا میشه. ما عینا این واسه انوبانینی داریم ما فقط 6 تا6 داره تو اوستا که اول وحشت کنیم که حالا بگیم دستا بالا اینی بسته خراب کرد نه اولن اسمش اون چیزی که آقای چیز به ما می آقای سعیده کردیم من اینکه این قضیه هیولا هی شدن زهاگ در اوستا رو ما برای انسان‌های متأخرتر واقعی تاریخی هم داریم انوبانینی حاکم لولوبیس خب این حاکم خیلی وحشتناکی هم هست رو کشیده به بند و ما بعداً متون متأخر می‌دونم که اینها رو به چوب می‌کشه برای اولین بار در تاریخ اون قضیه به چوب کشیدن از انوبانینی شروع میشه آدم خیلی قشنگه این در بابل دوران کاسی میشه نماد هیولای آدمخوار این زهاگشون میشه میشه دقیقاً و اینو در نظر بگیرید که فکر نکنید که این آدم بد است بس این حیله بد است پس آدم نبوده نه در مصرشان عرض کردم که داری این آدم به ها سقوط میکنه حالا زمانش میخوام صحبت کنم ببینید در شاهنامه دقیقاً خیلی جالبه تا بیتی که میخواد بگه 40 سال مونده به پای حکومتش داستان کلیگویه هیچ جزئیاتی توش نیست این آقا به قدرت رسیده از دوران جمشید کارشو کرده قدرت رسیده این قبل و این 960 سال, سالش هیچ کلیگویه آمد و بد کار بد کرد خداحافظ میرسه به بیتی که میگه چهل سال مونده به پایان حکومتش که میخواد فریدون زاده بشه از اونجاست که در شروع میشه میدم جز... رو کل 96 سال هیچی, هیچی نیست, نیست. کرده. چل سال مونده به پایان حکومتش این آقا داره جوزیاتش میاد و این آ... کودک نوزاد به دنیا میاد و اتفاقات بعدی میفته شما حاملگی مادر فریدون رو هم نوخ مدرن نظر بگیرید 41 سال حکومت 42 سال حکومت میتونیم تخمین بزنیم به سبک شناسان این آدم با داشته‌های ما 41 2 سال حکومت کرده این 40 سالش مشخصه و این طبیعیه اگه زاده باشه آدم جوونی هم بوده میتونست بعد از حکومت افتار دو ساله داییش یکی از کارهایی که تو شناسی می‌کنن چیه میگن اول نسبت به روای دوم چیه که این حکومت دو بلند پی پی دوم در مثل سال حکومت کرده رامسس دوم در مصر 60 سال حکومت کرده پسرش، پسر اینم چندمش 11 سال حکومت کرد. طبیعیه. و در 60 و 11 سال. سال. می‌دونید؟ اینجا هم، اینج همون قضیه پیاده شده. اون قبلی دو سال، حالا این هم که جوونکی بوده، به 40 سال 42 سال حکومت کرده. طبیعیه. بعد اتفاقی که میافته، فریدونی میآید. که باز این پدرش هیچ ربطی به سلاتین شاهان قبی فرما روانی قبی نداره بله وقتی تون اینجا به پایان میرسه ما فریدونو و مسائلی که بعد از اون میاد و اصلا چه اصلاحاتی رو انجام میده و محدودی حکومتیش کجا هستش رو در اسم بعدی با شما خواهیم جناب آقای کریمی عزیز زن ادامه فرمایشاتون به قسمت گذشته این ابهامی که در واقع هم بنده مطرح آ فیروزی مطرح کردن کاوی آهنگر حالا فکر توی فضیه شما هم زمان کاو فری اون قطتم به دوره فلزاد نرسیده. این چه مسئله است چه سری هست که اورو کاوی آهنگل می یا نه یا اصلا چون متعتقدق اون دورره فلز اصلا بوده ایداددی هم ندارد تا بگیم چون بالاخره یک موضوع علوم انسانی هست شاادستان علوم انسانی هست علم فیزیک به این مرحله منله برست که اصلا بشر واقعا درست سال هم. مثل از چه ساله که اصر فلزاد شده. قبلا هم کشف کرده. این هیچ ایرادی هم ندانه با این مسئله برسیم به نام خدا با درود فرخوان خدمت همینان گرامی ببینید واژه آهن آنه. هم واژه‌های اصلا مربوط به فلزات بیشترشون از رنگ گرفته شده مثل ارز ارزنتای که شده در لاتین که الان آرژانتین یعنی سرزمین نقره من بارها بارها تکرار کردم زبان شاسی ماست خیلی جا هست که هستن باستان شاسی نمیتونه میشه ما کمک کنه اگه خود کار کنه شاید هزار سال دیگه به چیزی برسه که امروز ما میتونیم با زبان شاسی همین امروز بهش برسیم راحت خیال خودمون راحت کن حتی تو زبان پهلوی واژه آهن به کل فلاسات اطلاق می‌شده ما این حتی تو اکدی هم داریم به کل فلزاد. به کل فلاسات آهن گفته می‌شده بعد اینکه من خدمتتون عرض کردم بند دوره فردون 1004 از میلاد میدونم بعد حالا بهش برسیم همه اینا رو دونی دونی توضیح می دیم. دوره فرهیدن هزاریه چهارم پیش از میلاد شیش هزار سال پیش درست این دوره که من براش در نظر میگیرم بعد اصلا دوره نوسنگی شیش هزار سال پیش کتابش هست آقای هم تمام توضیح داده که مثلا کجا مصر پیدا شده پیدا شده جمشید دیگر... بالا چند سال پیش شما خدمتون خدمتتون رسکم جمشید یکی از بزرگترین دوره‌هاست من جمشید گفتم از پیش از عصر یخ بندان آغاز میشه تا 6000 سال خیلی خیلی, خیلی, این خیلی صفحه سال برای جمشید قایل هست. بیشتر از این, این یعنی این اینکه اون انسان ولی من این اصلاح کنم که 6000 سال پیش 500 سال از عصر مفرق گذشته. بعضی نقاط ایران 4500 شروع میشه. دلست دلست دلست. من گفتم خدمتتون اینه ها... که آقای مانول برولیان بزرگتر نشونه تو این زمین شناسی دیگه. دیگه موجود جهان موجود خوشبختانه ایشون این کتابی که آقای من خودتون استاد بنده بوده آج فرز جنیدی کتابی که ایشون نوشت باعث شد که ایشون تو آمریکا به تاریخ ایران علاقه پیدا بکنه و بیاد س که کتاب تو این زمین نوشته تو جهان بین نذیره دوستان میتون به هم تهیه کنم. می, بله. می این مثلا آهن رو میفرماید ببین انجام موقع اینا ما همش بهش میرسیم دونه به دونه بهش خواهیم رسید اصلا خودی که مغ چیه؟ اینا ای کی شکل گرفته از زبانی که آتش برای چی ایرانیاتون آتشی کف کن در تمام زبان هنروپ های انقدر گسترده است آتش عذر میخواه آتش از زمانه. انسان نخستین در آفریقا ما, ببنید. بوده. ببنید ما با آفریقا کار نداریم این داستان کاملا متاخره ازم... ساختگی است. ببینید من خدمت رو کردم موقع های ایرانی به یک سری نتایج رسیده بودند. این نتایج رو به صورت اصول آوردن حالا باید ببینیم چقدرش با علم امروز همخونی داره هم این اینا ما شاهدی براش نمیدونیم که این انجامنی باید باشه که این کارو کنه این چیزی که ما میتونیم بش ما تو ریاض... تو ریاضیات یه جایی داریم که میتونیم بگیم که آقا میتونیم از آمار ما همه این کارا رو کردیم و الان جدولش خدم... میوردو خدمتتون موعدین وقت خدمت بچه ها چندین بار گفتم یه جاهایی هست خوبیه بچه رشته فنی اینه که چون ریاضی کار کردن و سیستم کار کردن سیستم و سیگنال کار کردن میتونن تو همه جا رو به ببرند. تمام اینها که مو اصلا موبد یعنی چی اینا کل شکل گرفته نخستین انجام اصلا که من انجمان چیه اون چیزی چقدر طول کشیده تا با اون چیزی که امروز ما بهش فکر می‌کنیم رسیده واجه آهن خدمتون عرض کردم که از همون اول اصلا معنی کل فلزاتو میداده حتی شما ببینید مثلا چیزی که به نقره اطلاق می‌شده میاد تو فارسی همین ارزنتا میشه ارزیز میشه قل اصلا یه فلزه دیگه هی. ولی ریشه‌ش کیه ریشه, ریشه فلزات پیدا کردنش بسیار دشواره ولی بسیار شیرین دوست داشتنیه. چرا چون تو دور زمان اینا مدام با هم تبدیل شدن یه جا بر تو میون معنی برنج گرفته یه جا دیگه مثلا معنی مس گرفته اینا همه دلیل داره ببینید من خدمتون از که میگم اینا هرگز من شاه نبودم به خاطر که اگر اینا شاه بود بعد ها اینا رو حفظ می‌کردن بس چی مندم اینا پس از هند ساخته شده و به درستی و به زیرکی تمام کریستیان اصلا اینو فهمیده بود ولی اینا بس چی فهمیده بود چون میدونسه اگر سداش در بیاد چون اومده بود نوم ببینید ما بزرگترین مشکل این بود که این واسطان شناس یهودی برای اینکه تورات همه چیزش درست در بیاد میخواستن خط و نمیدونم تکامل بشر و سفال و هر چی هست تو میان رودان بشه که اون جایی که میگن حضرت آدم و هوا بودن همه چی باون هم کنی پیدا کنی. از اطراف الان هم سال میخوایم مند. کسانی که انسان که تو میان رودن زندگی میکنن، سان کسی نمیگه اینا سامی بودن. از باتل شده قبلا فقط جمعه فقط یک جامدی کوچیک ببینید اینی که در هندیان درن باز دلیلی بر نیست که اینا هم بعدان ساخته شدن ما شواهدی داریم از دیگر ملل که برایشون تاریخ خودشون چند دسته بود به همون دو باستان. یکیش مصره ما چندین نام نامه داریم از باستان، که پاتشون اولیشون چند تا آدم مختلفن بعد نفر مثلا نفر اول اون چهارم اون میشد این دلیل نمیشه که اینا بعد از اون رساله بدین ببینید این یعنی اینکه یک جمعیتی از اون نژاد و عدست داده یا اصلا ناقص داره هرگز هم چیزی و بعد عمره نامنامهشو ناقص و در هم نوشته های آشفته ما به شدت زیاد دارین ببینید من خ... ده هزار فرنگیشم عرض کردم گفتم ممکنه که این اسطوره کیومرث به یه شکل دیگه ای تو هند بشه، تحول اس یه شکل دیگه ای بشه ولی بالاخره یه جوری خودش نشون میده. نه اینکه سفر مطلق، سفر مطلق داریم ما. اصلاً صفر مطلق, مطلق داریم ما با, با, مطلق داری؟ با, با, با هندی ها تو زبان کلیل و دمده بود مراد برداشتیم. مصریای باسان در یک سرد در این ایبن رود بود باستان... اون 100 کیلومت بالای رود بود. باسان بذلید من باطل اصلا فرنگی کسی نتوسه فرنگ خودش رو در کنار یه رود حفص بکنه، فرنگ هند. اصلا یک فرنگ عظیمه اصلا دا مووا ولی ما تو داریم مسئله داریم میگن این همانی میگن این فاجعه ایه که مثل زبانشاسی استشاسی داره میان میگن, میگن خو این واژه یعنی این پس این واجه توم مثل اینه این همانی. Identity اصلا اینا به اون میخندن به خدا اصلا بریم اینا رو حرف رو بزنیم من خدمتتون عرض میکنم بید ما کتیبه رو بررسی نمی کنیم بید اسطوره بررسی میکنه اصلا ما اینا نمیتونمش چت... لیبل اسطوره بزن بشاست اسطوره بزنم تا اثبات نشه اسطوره است اگر شما اگر کتیبه اینا داستان بود های بر... تاریخی همون چیز که گی... کامرون گفته آشقی اصلا در مرز مپ... مپم در مرز تاریخ افسانه اینا اصلا... هنوز نه افسانه نه تاریخ هستن نه اسطوره‌ نه, نه, نه, نه, نه تاریخ نه به کومرون کاری دارم این حق خود ما ایرانی است که بتونیم باش کنیم ما برچس نمیتونیم بزنیم ببینید از این اگر کتیبه بود میشد آقا تاریخ میشد بل اگه نوشته بود تاریخ. تمام نا... مشکل ما شما اصلا... که تو این در 20 ساله من دارم میگم بابا اصلا از زمان تورات ما داشتیم که اینا پدر پسر رو اسم قوما بوده اصلا میگم در پسر یافظ شد از یه پسری نه نه سال زندگی کرد یک باستانی است. پس برای امروز بلی... نیست که نه این, این درستان کننده درستان این, مولا. این... مولا. کننده حقیقتون فرد نیست اجازه اومدن چیکار کردن من بارها طالعم از ده برنامه پیش خواستم این پای چیزها رو یه جوری وا نکنم ولی اینقدر مجبوری می‌خورد وا کنیم پای این نویسنده‌های اسلامی این نویسنده‌های اسلامی منم به بشناوندگان دارم میگم میتونن برن کتابش هست من معرفی می‌کنم میتونن کتاب این پژوهشگاه علوم فرهنگی این کار کرده یعنی ترین و بهترین اساتید ایران جمع شدن مثلا اومدن گفتن آقا هر حتی یه بیت شعر در مورد کیومرث هست ببینون چه واقری کنیم اگر شما برید اینا رو بخونید به یک سیاه چال گمراهی میکشونن همین آقای مسعودی همین آقای تبری همین آقای حتی ابو بیرونی ببینید اینا ساده ترین شما الان ترمید دانشگاه قبول بشید کارشناسی ارشد فرنگ و زبانهای باستانی و یا زبانشناسی همون ترمه اول به شما میان جدول های واجشناسی رو میدن میگن مثلا چه واجه میتونه به تبدیل بشه واجه ملازی چیه انسدادی، چیه انصایشی چیه قلتشی چیه لرزشی چیه و ده ها چیز دیگه اینها ها ساده ترین تبدیل ریبله رو بلد نبودن بله این ها زبانشناست نباشه خب... زبان بله یه رو امده زبان... این چیز اومده یه داستان ساخته گفته خب... که بلق از ا اصلا بلاخی بوده یعنی داستان داری گفته نمیذارم ولی اینا این... اگر ب... اون خبری ب... میاد میگه این روشونه اش دو تو دنم گوشت زائد گوشتی بوده مساله زبان شناسی یعنی نیست مسئله پزشکیه بی سوادی نه سواد پزشکی کاملا هوشه بزن... این هوش نیست کسی میتونه بخواد مساله زبان شناسی نیست چی گفته ببینید اسطورشون شنان... برآمدگی بر دوش این آقا دیده شده شده باز مدت گرفته کسی اکس کس... نباید باشی. کسی عکس گرفته از دیره آقا شده من... اصلا گزارش شده فکر کردن م... این آقا اندیشیده یا شاید قبل از نه... این آقا این این زمینیه ببینید این, ببینید. این, ببینی این اتفاق زمینیه و قابل نمیدی. اجازه نمیدید شما ببینید شما تو جلسه پیش با آقا چیز گفتید که آقا ایران مهر گفتید آقا سندای متأخر و رو بیایم ببینیم متقدمه 100 درصد در هر جو جهان برید ما مدارک اوستایی نداریم ببینید کلمه عجی که ازش عجیده هایی در اومده این در تمام زبانهای هندو اروپایی به منی ماره ولی ماردوش ما هیچ نداری هیچ کس حق نداره بیاد این رو بگی آقا من به نظر من این چیز فلان علت این است که مار 99 در 99 درصد بسیار فرنگای جهان نماد اهریمنه علت اینه این آدم احریمنی بوده ربطی به ماردوش بودنش نیست من خدمت رو عرض کردم عجیده آقای جنیدی خوشبختانه ثابت کردند و گفتم خدمتتون کنگره زمین شناسی آمریکا پذیرفت و تمام شده است نمادی از اجدها در تمام فرهنگ آلمانی سریمی آقای اصلا کتیبش چه کاری با استانشی نیستی؟ مثل آقای آقا اول چی... این چیزی که ایجنوی متر که چی هستش دقیقا. ببینید این تمام شده و ثابت شده که آقا اینا نمادی از آتش فشان هایی بودی که سرا... اتفاق افتاده اجدها آخه آتشفشان کجا و در همش من چون میام کتابش میخواد چاپ بشه ما نمیتونم به هزار سال چرا خنده داره به شدت خنده داره خنده داره ما یه دونه فبرماتش به تو چاتال هویوک داریم که اومدن تازه دیدنش ازن ذبین شناختن اسباشو نقاشیشو کشیدن ما میدونیم که این نماد اون کوه است مثلا 20000 سال, سال پیش هزار خورده سال بیشتر آناتولی, آناتولی نقاشیش هست شا... شبیه کوه کوه هم هست کوه هم کوه آتش بشانی خاموشه به زور میخاید اینا رو پادشاه بکنیم ما بازم شاهد ما شاهد داشته باشیم دمومن واقعا کی بوده آقای مونولورویان زنده است آ دکتر نباتی زنده است دعوا چون ما میکنیم دعوتش می کنیم می اینج توضیح بدن اخر فوران دماوند هم مشخصه کی بوده باشه آخه میاریم توضیح میدن فوران هم... کش کرده باشن مگر اینکه همه میاد می این توضیح میدیم آقا اصلا انکارنا بزیر چون اصلا بار... کش چه ارتباطی داره چه ارتباطی داره مثلا زهاک به کوه آتش چه ارتباطی بین آتش فشاخ و مار چه ارتباطی بین آتش فشاخ و مردوشه بیرونی. بیرونی من خودم روشا مهندسی ارادت به بهشون دارم ولی در اسطوره‌شناسی، زبان‌شناسی فاجعه به بالای این سلیقه شناسیه به نظر من. فاجعه به ناتوجه شو و مار می‌خوای مساوی بزنه. ببین نخیر، اینا سنداش ببین، حالا آره من خدمت تو همه عرض می‌کنم. میگم الان دست و پا بسته و در تلویحی میگم چون میخواد چاپ بشه. من, من میدونم ما ببین میکن. من شاهدی میام جلو. ببین من میرم مار زفرنگ مسی احریمنه. من هیچ ب... من دیوی بوده این چون... مار، این آ... مار. احریمنی بوده که ایج... ارباح خ... رو می‌خورد. خب بریم یه کاری کنیم. اصلا ما اینجا چلو نشستییم. بریم مصر رو وردوریم بیاریم ما باید شاهد فرروشته باشیم ابوریحان بیرونی هم وسط ما باید جای شاهد در 2 سال حکومت کرده مثبته. آقا اصلا در چی مار مثبته ببین این خل مطلبه اصلا این همانی شاهد... ما داریم میگیم آقا در زبان سلیقه میشی در... سلی اسمش میشه دانش برتر امروزه اصلا من نمیدونم دلیلی که اینها آوردند برای اینکه اینا یه چیزی پیدا میکنن به دوره که دوست دارن و بعد میگه این دوری که ما دوستیم اتفاق افتاد اینامون آخه ببینید آخه آتش فشان چون چهرش حالت غول مانند بشه. این میتونه حتی چه چیز برد برد برد باشه. باشو باشو دل دلیلشون چی ازش دلیل ما میتونا شنیده بودیم, ده. بودیم ده. که دیو سفید تنوره میکشید دود میکرده این کویلامونده ما این... شنیده اینو بودیم اینو یک سکه‌ای در ایران پیدا میشه بس. الان تو موزه آلمانه به خط پهلوی درش نوشته بس. کیومرس کیومرث ما چی ما میگیم کیومرس نخستین بشره میده بین در هم بین انسان میمونه این تبرق یکی از فرضیات رایجه که کیومت این... انسان میتونن نخستین پادشاه اینو این من بارها گفتم که این در آلمان پیدا شده نویسنده آلمانی میگه گمان ایرانیان بله. از نیایشان را با ای از مردمان نخستین که با دانش باستان شناسی و مردم شناسی باسازی شده میتوان سنجید اندیشه ایران پیش از اسلام چنین بود که کیومت نخستین مردم به جهانی که در آن جانوران پست از دیدگاه دانش دگردسی دگردسی تبدیل زندگی می‌کردن فرستاده شده بود ببینید بر... مخلت است چرا چون اومده یک, یک, یک باور رو یک آه... باور از م... یک مکتب رو به کل ایران باستان تعمیم داده آقا شما اجازه نمیدید فتونی جنیدی گفته آدم کمی نیست کاری ندارم ببین مثلا میگن ایرانیان باستان آه... یک تا پرست بودن آه... شما حق نداری یک مسئله از یک مکتب رو آه... آه... به کل مکاتب به ایران باستان تعمیم بدید من میگم شما من میگم شما کاتب پیدا نکرد من میگم آقا این یه سند باستان شناسی پیدا شده ما از داریم که جمشید انسانه من به گاتا سوراخ دارم من برای گاتام براتون میگم یه کوانترا این سن. این یکی آه. از فرض ببینید کیومرث باها گفتم که دو چهره ازش هست نوگسین پادشاه نوگسین انسان این متعلق به اون آدمهایی است که به مکتب نوگسین فک میگفتن فکر می‌کردن نوگسین انسان, انسان بوده بله ولی بله خب در این چیز اجازه شما... میدید من صحبت نا... کنم آخه نا... در مورد اون خب الان بحث شده بعد بحث ما میشه اصلا قاطی میکنه ببینید اصلا در مورد اجدها و اون چیزاشو اصلا نفهمیدید این به اونجا میرسیم بذارید کیومرث رو من تمام بکنم آقا من دارم سند باستان شناسی میذارم وسط این یکی از مکاتبات شما میکشید بذارید شما میکشید بذارید برای کی من به شما ثابت خواهم کرد که اتفاقا اتفاقا شما داریم. ما داریم. سند نوشتاری ما دارید شما سر دست اول ول میکنه دست اول این سند متأخر به دوران هن... ساسانی متأخر از یکی ساستانی. از فرضیات ساسانی که میخواسته برای خودش پادشاهی درست کنه میمونه نص پادشاهی میتونه مختلفن میمون... ببینید ما در یونان هم داریم ما آقا من به یونان چه کار دارم شما میگیدید بعد دهه ما از مکاتب ما ببینید دقیقا توی صحبال های یونانی دیگه. هم یک فرد چندین روایت کشیدنش یعنی میاه... ما اینو دقیقا داریم میخواید شما صحبت داریم اینو همونه موضوعی که از تحمورس یا از هر چی نشون بینه آقا مطالبه یه سری فرقه است